بسم الله الرحمن الرحیم سخنرانی مرحوم آیت الله حاج میرزا علی فلسفی موضوع سخنرانی امامت جلسه 24 اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسولنا و نبی نو و شفیع ذنوب نو از الغاسم محمد. و على زبیه صیبین خاهم. و علا عدائه لا نصّ الله على عادهم. اجمعنا الى يوم الدين. ایار مال کسی بدست کسی رسی بدون رضایت صاحبش و در این مال تغییری داد در این صورت دو, صورت دو فرز تصور می شود یه وقت تغییریست که اینی درش موجود نیست و یه وقت است که اینی درش است سلام فرد بفرمایید نخی از دست کسی به دستش رسید به زور از کسی نخی گرفته بود و این نخ رو بافت الان که رو میبافه مثلا فرد بفرمایید جاکت میبافه یا شالی ازم الان در اینجا چیز زیادی موجود نیست همون نخواست به این صورت در آمد یا گندمی از کسی گرفت و اون گندم رو آردش کرد الان در این آردها چیز زیادی موجود نیست همون گندم ها به صورت آرد شدن یا فرض بفرمایید مثلا زمینی از کسی گرفت و در اون زمین چاه کند اون چاه کند یه وقت خاکا رو برده کمش کرده چیز زیادی الان موجود نیست در صورتی که یا مثلا فرض بفرمی طلایی از کسی گرفت و بعد ای رو نشست و زرگری کرد و گردنبند ساخت مثلا در این صورت که اگر تغییری در اون عین داده شده ولی چیزی زیادی در اون عین موجود نیست اینو باید به همین صورت به مالکش رد کند و نمیتواند بگوید که من روی ای کار کردم اجرت مرا بده مثلا فرض کنید که تلاش ازی گرفته بود به زور و این طلا رو تبدیل کرده بود به گردن و خیلی هم روش کار کرده و زحمت کشیده اول مثلا فرض مثلا از ده ده مثقال طلا بود مثلا اگه مسقابل 4000 تومان حساب کنیم 40000 تومان قیمتش بود ولی حالا که گردم من ساخته 50000 تومان 60000 تومان قیمت داره نمیتونی بگی این جنس تو اول 40000 تومان قیمتش بود حالا 60000 تومان قیمتشه من کار کردم روی این جنس به قدر 20000 تومان باید این اجرت من رو بدی نه حق نداره بی خود کار کنه نمی چیزی از این آقا بگیره از صاحب این طلا بلکه باید جنسشو بهش رد کنه و حق مطالبه گردن چیزی از او نداره. اگر بگوید خب پس من حالا که چیزی بهم نمیدی این رو برش میگردونم به همون حالت اول و بهت میدم همون جوری که مال تو بود مثلا این پارچه این نخوا رو که بافتم، حالا میشینم میشخافم و یومتبه به صورت نخ میکنم و به تو میدم این ای که مال تو بود و من زحمت کشیده بودم روش و ای رو ریشده بودم و نخ کرده بودم حالا دومتبه نخ رو میخوام پنبه کنم بهت بدم حق داره یا نه؟ نه نمیتوانه نمیتونه بگه من نخا رو پنبه میکنم زیرا الانم که بخواد این نخ رو دومتبه پنبه کنه این بافته ها رو باز کنه خود اینم تصرف در ملک غیره و حرامه و بدون رضای صاحبش نمیتوانه این کار رو بکنه و اگر کرد این کار رو زامن بافتنش هست باید پول بافتنیشم هم پس حق این کار رو نداره و اگر این اقدام رو کرد و این کار رو کرد باید پول بافتنش رو به اون صاحب اون نخا بده برای خودش بافته بود ولی حق نداشت به شکافت حالا که شکافته بایستی پولش رو زمینی از کسی گرفته بود به زور گرفته بود زمین رو و در این زمین چاه عمیق زده آب درورده خب میگه پول چاه رو بده نه حق نداره حق نداره پول چاه رو عزیبه. بگه خب چاه و پر میکنم حق نداره. اگه پر کنه زامن قیمت چاه هست باید این همینی که کنده به همین وضع رد کنه به صاحبش این آقای غاصب یا غیر غاصب این شخص چیزی خودش اینجا نداره کار کرده رو این جنس کار کرده رو این زمین ولی خودش چیزی نداره که بخواد اون چیز رو بگیره در این صورت باید عین اون مال رو رد کند و حق گرفتن اجرت برای کارش نداره و حق تغییر دادن و به صورت اول در آوردن نداره بلکه باید به همین وضع رد کنه و اگر بخواد تغییرش بده و برش گردونه به حالت اول میزمنه. حب این کار و اما اگر صورت دوم اگر یک تغییری در اینجا داده که اینجا الان اون آقا هم یعنی این آقای غاصب یه چیزی داره مثلا فرض بفرمایید زمینی را از کسی گرفته و در او ساختمان کرد زمینی را از کسی گرفته در او زراعت کرده درخت کشته و امثال زالش دیغختار مال خودش بوده ساختمونش مال خودش بوده و این زمین رو ساخته یعنی صورت اگر از میشد مثلا حالا این برای توجه به نکته مطلب اگر فرض فرمایید اینجا یه آقای بود زمینی داشت یه مقداری هم آجر و یه مقداری هم گچ و یه مقداری هم آهن و اینا تیه کرده بود مخواست بنا بزره اتاق بسازه بعد یه کسی اومد همه اینا رو گرفت همون گچو همون ها همون آهنا رو برداشت اتاق ساخت این میشه قسم اول این آقا چیزی اینجا نداره یعنی این آقای غاصب چیزی نداره اینا همج زمین و آجر و گچ و اینا همه مال اون صاحب اولی بود این زحمت کشیده و ساخته حق و اجرت برا کارش نداره حق اینکه بگه خراب میکنم نداره این مال صورت اول بود و اما نه صورت دومش این است که زمینی را از کسی گرفته ولی خودش آجر آورده خودش آهن آورده گچ آورده چوب آورده اینجا رو ساخته خب این گچ ها و این آجر ها و این آهن مال خودشه صاحب ملک یعنی صاحب زمین میتوانه به این بگه آجراتو و ورد رو درختی که اینجا کشتی بکن ورده ببنج زراعتی که داری بکن ورده ببنج این آقا بگه من درختام بکنم خوش میشه خوبی خود کاشتی تو ملک, ملک مردم بسید بس درخت کشتی خوبی خوش میشه خوش میشه میتونه بگه حالا که من درخت کشتم میخوام بکنم این تفاوت دو من یک نقصان قیمت پیدا میکنه ارزشش میره از بین تفاوتشو بده نه نمیتونه از اون مطالب کنه به من چه تفاوت پیدا میکنه به من چه درختو خوش میشه به من چه مربوطه که درختات معیوب میشه بخواسي از اول نکن. حالا که کاشتی در ملک مردم وردارو بود بر. تا وقتی که بر نداشته اجاره این زمین رو باید به صاحبش بده هفته قبل عرض کرد ولی اگر صاحب زمین میگه اینجا رو خالی کن موظفه که خالی کنه این ساختمون رو خراب کنه آجراشو برداره ببره آهناشو برداره ببره درختارو بکنه برداره ببره حق ندارد از اون مالک بگه این درختای من خوش میشه یا آجر و گچه من دیگه خورد میشه یا آهن من یا چوبای من صدمه میخوره پس بنابراین خسارت من رو بده این خسارتی است که در حقیقت خودت به خودت زدی در زمین مردم این کار رو کردی به او مربوط نیست اگه او خراب نکست صاحب زمین باعث نحاکم شهر میتونه خراب کنیم البته باید مراجعه با حاکم شهر بکن. و نمیتواند صاحب زمین به این آقا بگه تو اینجا میبایستی ای آجورا و گچه رو بکنی ببری حالا بیا این آجورا و و آهن تو به من بفروش. اگر او به میل و رضای خودش دلش خاص بفروشه میفروشه اما اگه نخواست نه ملزم نیست که بفروش چنون که این بنده خدای ساختمون کرده به صاحب زمین بگی خب حالا پس زمین تو بیا به من بفروش نه او ملزم نیست که زمین رو بفروشه دلش خواست میفروشه دلش نخواست نمیفروش بنابراین هیچ کدام نمیتونن طرف رو الزام کنن تو اون مالتو به من بفروش یا او الزام کنه تو زمین تو به من بفروش ک هم دیگر نمیتونن اضافه کنم. ولی صاحب زمین که در حقیقت زمینش رو غصب کرده بودن و مالک حقیقی بود زمینش رو به زور گرفته بودن حق داره که این رو وادار کنه درختات رو بکن زمین تو از میشه ساختمون تو بکن آجر رو گچطور از براز. و اگر نقصانی تگدا می کند رو نمیتواند از صاحب زمین بکنن. و اگر زمین نقصان پیدا میکنه این آقای قاسب باید تفاوت این نقصان زمین رو بده مثلا فرض کنید درختوشو حال میخواد بکنه این زمین گود و بلند و خراب و ویران میشه اینا رو باید مرتب کنه و ببره بره بیرون و هم جوری گود بزاره و بره باید صافش کنه مثل روز اول تحویل بده و اگر نقصانی پیدا میکنه این زمین تفاوتش رو باید بده به صاحب زمین و خلاصه مطلب الغاصب یا اخذ و عشق احوال تو روایات داریم که از غاصب کسی که غصب کرده جایی رو یا چیزی رو با شدیدترین حال با او معامله می کنن. از غاصب می تمام خسارتهایی را که به این مالک وارد آمده و ازمی او حق نداره چیزی از خسارتها رو از مالک بکر در هفته قبل عرض کردیم که این آقایون بزرگان علمای عامه اینها برای صحابه رسول الله صلی الله علیه آله ای ارزش فوق العادهی و تمام اصحاب رسول الله را مردمانی نیک و صالح و عادل و خلاصه اونجوری که مورد رضای خدای تعالیس میدانند و روی این مطلب اینچنین نتیجه میخوان بگیرن اگر این اصحاب جمع شدند یه نفر رو به عنوان خلیف معیین کردن بر همه واجب است که ای بپذیرند بپذیرن و اطاعت امر این خلیفه رو بکنن زیرا اصحاب رسول خدا هر کاری که بکنن مورد رضای خدای تعالی پس این تعیین خلیفه که کردن خدا پسند دیده این کار را و بر همه واجب است که ای خلیفه رسول رو با کن و روی همین جهت هم هر چی اصحاب رسول الله حکم کردند و بیان احکام کردند بر همه واجب است که بپذیرند و اطاعت کنند. زیرا اینها بندگان خوب خدا هستند، هر چی بگن مورد رضای خدای تعالی از کجا این مطلب رو گفتند؟ چرا اصحاب رسول الله این چنین هستند؟ به چه دلیلی رو میگن؟ میگن تا آیه در قرآن داریم که خدای تعالی این اینها رو جزو افرادی قرار داده که خدا از اینها راضیه یه آیهش دوتا آیه هر دو هفته قبل خوندم ولی امشب شرط تتمه مطلب رو میخوا کنم یه آیهش این بود که اولو بله این الشیطان الرجیم از سابقون ال اولون من المهاجرین و الانسار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجری من تحتها الأنهار اون سابقین اولین از مهاجر وانصار و کسانی که پیروی از اینها کردهاند بهنیکی اینها کسانی هستند که خدای تعالی از اینها است، و اینها هم از خدای تعالی راضیان و خدا بهش تو برای اینها مغرف این یا آیه آیه دیگر رقل الله عن المؤمنین اذ اونه که تحت شجره خدا راضی شد از اون مؤمنین که با تو در زیر درخت بیعت کردن رضی الله عن المؤمنین ازی و که تحت شجره و علم ما فی هم خدا دانست که در دل اینها مثلا به تعبیر بند صدق و صفا و راستی موجوده فانزلالله و سکینته علیهم خدا سکینه و آرامش را بر اینها نازل فرمود و اثا به هم فتح هم قریبا یه فتح نزدیکی رو هم به اینها سباب و جزای این کارش بود. این دوتا آیه در قرآن روایاتی هم در این باب از رسول خدا و واله نقل کردن که پیغمبر هم در این بابت مطالبی فرموده است یه روایتش شین است که فرموده است پیغمبر اصحابی کالنجوم با ایه مقتدیتوم احتدیتوم اصحاب من مانند ستاره ها هستند به هر کدامشون اقتدا کنید و به دنبال هر کدامشون که برید اونها راه رو به شما نشون میدهند و شما رو هدایت میکنند این روایتم از رسول الله نام روایت دیگری هم نقل می که پیغمبر والی واله فرموده است لا کچتم او امتی علا خطا یا علا زلال هر دو نسخه روایت موجوده امت من بر زلالت و امت من بر خطا اجتماع نمی یعنی اگر یه وقتی امت من بر مطلبی اجتماع کردند شما بدانید که این خطا نیست و این زلال و گمراهی نیست این مطلبی است که اون هفته قبل عنواناً عرض کردیم در هفته قبل آیات متعددی از قرآن خوندیم که خدای تعالی در حق همین اصحاب رسول الله خدا در قرآن میفرماید. بده زیادشون منافقن بده زیادشون کسانی هستن که پیغمبر رو عذیت میکنن پیغمبر رو عیب جویی و ملامت میکنن که آیاتش رو خوندم و من من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مرد و النفاق یک ادهی از اهل مدینه غیر از منافقین منافقین خارج اطراف مدینه یک ادهی از اهل مدینه شدیدن پافشاری برنفاق دارند. از شد نین که این یه آیه بود آیات دیگری هم و من همو النبی و یقولون هو عذون و من و من هم من یلمزو صدقات عیب جویی میکنن از تو و میگن اگر صدقات رو به اونا بدی راضی میشن اگر ندین مستخد و ناراحتی دارن از دست تو و همچنین آیات دیگری که الانم یادم رفته خوندم بله ببینم الان که که آوردم از شود به که فرمود اده از اینها از جنگ فرار میکنند دی از اینها تو قرآن داره از ازم شده این وقتی بهشون میگه پیغمبر بیان جنگ اینها میگن که هوا گرمه حالا بزرگ خود هوا خونک بشه خدا میفرمد نار و جهنمه اشد و حرم آتش جهنم گرم است و امثال این آیات که قبلا خونده بودیم ازم شد یقول المنافقون ولدین فی قلوبهم مرض ما و الله و الا غرورا منافقین و غیر منافقین اونایی که در دلشون مرزه است میگن پی خدا و پیغمبر ما رو مغرور کرد ما رو گول زد و عدهایی که داد همش بی خود بود اینا از خواب رسول اینا رو خدا تو قرآن داره معرفی میکن یه دستشون آیهشو قبلا خونده بودم یه دستشون سماونه. لغام من آخرین یه دستهشون جاسوسند و خبرها رو میبرن برای کفار یا برای منافقین و امثال زالک اینا است که تو قرآن در اوصاف رسول اصحاب رسول الله شده. بنابراین ما میتونیم به این مطلب بگیم تمام اصحاب رسول الله مردانی نیک و پاک و فایزه آدل مرزی خدای تعالی از هر کاری که بکنن خوبه میشه اینو گفت این آیات را در هفته قبل ارض کردیم و این مطلب رو گفتیم از آیات قرآن در و مکرره در مکرر مخالفت با رسول الله کردن اون روایات دیگه ایلا ماشاءالله روایتی که سنی و شیعه نقل کرده همه نقل کرده تخلف از جیش اصامه ایامی که پیغمبر مریض بود در بسته اصامت بن زید که یکی از اصحاب رسول الله بود ایرو معمور کرد که یک قشونی بردارد و لشکری بردارد و به جنگ تبوک در مقابل رومی ها بره و به این دستور داد که بر خارج مدینه فلون نقشه کذایی علم و بیرق و پرچمت را اونجا نصف کن و مسلمونها ها موظفند که بیان اونجا زیر تو و فرمود که برید دنبال اصامه و برید و شرکت کنید دلشگر اسامه و خدا لعنت کند متخلف از جریش اصامه را رو نیوشیه نقل شد ولیکن نرفتن دیگه بعضی از عمر مومنین عمر نرفت عبیبک نرفت ادهی نرفتن از اینا گفتن یا رسول الله شما مریض هستیم ما دلمون به قول خودمون ور نمیداره که شما رو بذاریم بریم ما نمیتونیم هم چی بریم اونجا بعد هیچ بپرسیم که پیغمبر حالش چطور خبر بر ما بیارن ما اصلا حال حالم چی مطلبه نمیتونیم تحمل کنیم که بریم شما رو مریض بذاریم اینجا خب این دا بابش واسه و رسول الله فرمود لعنت کند خدا کسی را که تخلف کند از جیش اسامه ولی خوب نهارفتن دیگه مده بمون میشه برای شما با زلون میشه چیه؟ و امثال ذلک اله حالا با این قصه کار ندارم آیات قرآن رو ما دقیق میکردیم؟ وقتی قرآن رو نگاه کنی میبینیم می یک عده زیادی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و, و, عالی و, عالی و عالی چنین بودن یه عده منافق بودن یه عده جاسوس بودن یه عده مخالفت دستور خدا رو میکردن یه عده پیغمبر رو اذیت میکردن یه عده پیغمبر رو عیب میکردن. و امثال اینها این رو خدا تو قرآن در مارو بنابراین این ما بگوییم که هر چی پیغمبر اصحاب داره اینها از مردمان خوبی بودن و هر کسی که ملاقات پیغمبر رو کرده اون مثلا به این با خود قرآن منافات این راجع به این جهتی بود که در هفته قبل عرض کرد مطلبی که باقی مونده است این مطلب راجع به این دوتا آیه از الاولون من المهاجرین و الانسار به از همین آیون مفسرین این رو به قول طلبه ها من, من المهاجرین و رو من تبیینیه گرفتن گفتن از الاولون اون سابقون اولون کیا هستند؟ اون مهاجرین و انصار پس با این آیه خواستن تمام مهاجرین و انصار را جز به مردمان خوبی بدانند که رضی الله عنهم و, و رضوعه این رو میخواستن این چنین و این ولیکن احتمال قوی داره و شاید ظاهر آیه باشه و اینکه منه در اینجا منه تبعیضیه باشه از سابقون الاولون من المهاجرین والانصار از مهاجرین و انصار اوناییشون که سابق بودن و در اول اسلام و در غربت اسلام ایمان آوردن و ای پیغمبر و خدا رو یاری کردن اینها حکمشون اینه نه هر چی مهاجر و انصاره از الاولون من المهاجرین و الانصار که این منه در اینجا من تبعیزیه است اول طلبه ها نه من و حالا اگر هم شک کردیم برای ما کافیه ندانستیم که آیا این من من تبعیزیه است یا من تبعیزیه حالا کل حال نمیدونیم که این آیه تمام مهاجر و انصار رو میگن آدمای خوبیان یا بعضیشون رو میگه اون مقداریش که یقین داریم بعضیشون یقیناً آدمای خوبی بودن و اما آیا همشون خوب بودن نمیدونیم ظهور درستی اگر در تبعیض نداشته باشه در تبیین ظهور نداره پس بنابراین نمیتونیم بگیم و اگر دقت بفرمایید همین آیه رو ملاحظه بفرمایید من الم... از سابقون الاولون من المهاجرين والانصار پشت سر آیه بلا فاصله و من منحولكم من الأعراب منافقون و من أهل المدينة مردوال النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم عذبهم مرتع پشت سر این آیه آیه سومش آیه پشت سر این آیه داره و آخرون و طرفو به زنوبه هم خلط و عملاً صالحاً و آخر سیعن اعصال الله ان و یه دسته اینها یه دسته دیگری هستند منافقن یه دسته دیگری هستند که افرادی هستند هم گناه میکنن هم تاعت میکنن اینها پشیمانند و اعتراف به گناهشون کردهاند خدای تعالی شاید اینها رو بیاموزد پس با این دو تا آیه ای که بعد از اون آیه بلافاصله ذکر شده یقینا باید اون منه در اونجا رو منه تبعیضیه قرار داد که از بعضی از مهاجرین و انصار کسانی هستند که مردمان نیکی هستند نه هرچی چی مهاجر و انصاره و لذا پشت سرش و من لكم من حولکم من العراب منافقون و من اهل المدینه مرد و علن نفاقه و پشت سرش و آخرون اعترفو بزنو به خار توشونه و اینها رو شاید خدای تعالی بیاموزه پس بنابراین حتما باید منه در اینجا منه تبعیزیه باشد نمن طبیعی نتیجه باید بگیم در بین مهاجر و انصار افرادی خوب و لایق هستند. و آیه در زیلش داره رضی الله و و رضو خودش داره صفت این مهاجر و انصاری که سابقون اولون خودش داره آیه بیان میکنه صفت اینا رو اینا این چنین صفت داشتن که از خدا راضی بودن خدا هم از اینها راضی صفت رضای از خدای تعالی رضی الله عنهم و رضوعن صفت رضای از خدای تعالی که به طلبها راضیه در امر تکوین و تشریح هر چه خدا می‌کند ای راضی باشه و هر چه قانون و دستور میدهد این راضی باشه این صفت ابراهیم خلیل سلام الله علیه ها. که تو قرآن خدا می‌فرماید قال اسلم قال اسلمت لرب العالمین تسلیم در مقابل های تکوین و تشریع خدا بنابراین به قسم حضرت عباس میتونیم قسم بخوریم که تمام اصحاب رسول الله این چنین نبودن چه صلاحیت داشتند که این مقام پیدا کنن چنین مقامی که تسلیم در مقابل خواسته های خدای تعالی و راضی به امر تکیین و تشریع بودن اینها از از افرار اکثرشون صلاحیت برای این مقام نداشتند پس این خود آیه هم داره بیان میکنه این مطلب رو که همه مهاجر و انصار اینچنین نبودن این هم مطلب بعد پس بنابراین اولا شاید من تبعیضیه باشه نتبینی که و ذیل زیل آی آیه بعدی که و ممن حولکم من, من الاعراب و آیه بعدی و طرفو به زنوبهم این دلالت دارد که این که خدا از اینها راضی است و اینها از خدا راضیان غیر از اینها هستند پس بعضی از اصحاب رسول الله (ص) و رضی الله عنهم و بعضی هم قرینه دیگر در اینکه اینها بعضی از اصحابند نه همه اصحاب این هم دو مطلب یا سه مطلب؟ مطلب بعدی که باید ارز کنیم آیا برفرض که تمام اصحاب خدا از اینها راضی است و اینها خیلی آقاهای خوبی هست؟ آیا این افرادی دیگه معناش شده که هیچ وقت بر نمیگردند و کار خلاف نمی و اگر کار خلاف هم کردن دیگه ایمانشون چون صد اسکندری است که دیگه با... چی شکسته نمی‌شه نما من... خدا تو قرآن به رسول الله ولی و ولی فرماد لا ان اگه تو مشرک بشی همه اعمالت از به این رفتن دفته... می‌فرماد عبدپیغمبر می‌فرماد لو تقبل علینا بعض وی لا اخذناه ثم لقتعنا من بالرقب ایعنی پیغمبر به اوج چیزی رو به ما نسبت ما باید قدرت او رو نمیبینیم و ایقوتین او رو قطع میکنید اینی فرمود اینکه لا تطرود از مشادیت اون ربهم رب بالقضاء والاشی تا ذیل آیه میفرماست فت اگه اون من الوالمین یا من الخاسرین نواد فوقنا رو از دور خودت رد کنی و اینا رو ترت کنی بگی اینا گران بنا که اگر ترت کنی تو از خاسرین هستی یا از ظالمین هستی ایمان رو خدا داره به پیغمبرش میگه حالا این و سابقونن اولونم این المهاجرین ایمانشون خبیه تر از رسول اللهه که دیگه هر کاری بکنن مسونم میشه اینو بود دیگه به قول من دسته اسکندر کارشون چیز زره بهشون نمیزنه حالا فرض کن کنال خوبی بودن ولی این طاقه اینست که با همین خوبی نمیرن. دمانه تا آخر عمرشون اگر برگردند و عوضشان بشند و اخلاق و رفتار و اعتقادشون تغییر کنه ارزششون از بین نیره چنون که عرضش رسول الله از به این قرآنی رو میگه بایدم آیت قرآن راجع به این جهد که به پیغمبرش ولن ترگاهن کل یهود ولن نصارا حتی تبتبه املته هم میفرماده پیغمبر ریاضو نصارو اصول راضی نمیشن مگر مطابق از اونها بکنی بعد از دوستی که من یادم نمکنم ماتل کنم کنم کمیش میکنم ولی این اتباع تا احباء هم بعدالذی جاک من القلب مالک من الله من ولی من ولا نفیل بعد از اینکه من به تو گفتم اینا دوست تو نمیشن. اگه معزالک به خواسته های اینها بخوای رفتار کنی خدا برای تو نه ولی است نه نصیر پس بنابراین ایمان تا وقتی ارزش داره آدم خوب تا وقتی ارزش داره که روی خوبیش ایستاده باشه بنابراین وقت ما نمیتونیم بگیم اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله. همهشون خوب بودن تا آخر و حال اون که سنی و شیعه شاید به روایت متواتر روایت کرده باشند که رسول الله فرمود بعد از, ام... بعد از من امت من 72 فرقه یا 73 فرقه میشن یه فرقشون ناجین و بقیهشون در آتش خب بازم میتونیم بگیم اینا که از اون قرصان که نه اینا درسته و نمیتونیم بگیم اینا جز اون فرقه ناجی زیرا ما میبینیم همه اصحاب با هم اختلاف دارن امیر المومنین سلام الله علی با تله و دعوا داره و جنگ داره امیر با معاویه دعوا داره و جنگ داره خب بگیم هر دوشون حق هر دوشون در بهشن هر دوشون نمیشه در بهش باشن هر دوشون دارن ما همدیگه مخالفت میکنن یکی چون لابد باید به حق باشه دیگر حق خواهد بود بنابراین ما نمیتونیم از این آیه استفاده کنیم که تمام اصحاب رسول الله مردمانی که به قول ما اهل بهشت هم اینا قرآن شواهدی بود که برای مطلب زید کرده بود لقد رضی الله عن المؤمنین اون آیه دوم خدای تعالی راضی شد از مؤمنین وقتی که در زیر درخ با تو ویعت شدن پیغمبست های از ابتدایشو که من دقیقا یادم نیست پیغمبست ها والی والی خوابی دیده بود که وارد شده در مسکه و وارد شده است در حرمان خدا و تواف کرده و سعی کرده و تقصیل کرده و خلاصه رفته برای انجام اعمال من این خواب رو به اصحاب خبر داد. خدا تو قرآن داره لقد صدقه نبیه و رؤیا بالحق اون آیه شریف تو سوره فتحه لقد صدقه و رسوله و رؤیا بالحق لتدخلون المسجد و سرامه آمنین محلقین رؤوسکون و مقدسلین لا تخافون خدا این خواب رو راست قرار داد و تقضیب اثر داد به هجم واقع شد این خواب این خواب رو به پی فرمود و از سال شیشم ظاهران در ذهنمه سال شیشم هجرت و از خواب فرمود میخوان بریم برای عمره هنوز مکه نشده بود میخوان بریم برای عمره اصحاب جمع شدن یا برای حد و برای عمرال اصحاب جمع شدن 1000 و چقدر برای, برای در دنبال و بر برای سمت مکه نمیدونم قربان با بودن همه را شما وارد در جایی به نام رو که چند فرصفی فرصفی مکه از اهل مکه خبر بودن اومدن تو اینها رو ندارن وارد شده خلاصه بنده تفصیلشو نمنده خیلی آدم اینن محتلشو مخوام بکنم پیغمبر پیغام فلسطات برای اینا ما با شما هیچ کار نداریم فقط اوبادیم تواف کنیم سعی کنیم تخصیل کنیم گوزبنده و شده همونم بگوشیم بریم به شما بریم هیچ کاری با شما نداریم گفتن نمیشه دعوه و مرافع نزید بود خلاصه را بیفته و لشکره هاشون رو جمع کردن که بیان بریدن سر مساله بالاخره از این طرف و از اون طرف خلاصش اهل مکه هم دو نفر رو معمور کردن از بزرگان خودشون که بریم با پیغمبر یه جوری سوال کنیم که نیا به قرارداد مسالهه بریم حالا تقرار دادم و مساله حالا این اصحاب دعوا مرافق با پیغمبر و ناراهتی که ما چرا باید هم چی بشه چرا باید سوال کنیم چرا زیر این بار این زلت باید بریم ما بایدیم بریم اینجا جنگ کنیم مثلا پدر ایناس در بیاریم به تحبیل از می شود به اینکه ما تو هم چی باید بکنیم شاید توی ماها تصریح داره که عمر اومد گفت یا رسول الله آیا ما بر حق یا بر باطل؟ فرمود بر حقیم و با چرا نمی دونیم؟ اداب جزیی هایی کوچک بشیم اهل بهش نیستیم و مود بالا اهل بهش نیستیم. و با چرا نمی دونیم؟ فرموز من پیغمبرم و غیر از رضای خدا چیزی نمیگویم و آثار ناراحتی در قیافه حضرت ظاهر شده بود بالاخره قرارداد بستند و برگشتن نرفتن برای مکه و سال دیگه رفتن. حالا من اون تفسیرها رو نمیخوام لقد رضی الله عن پیغمبر در همینجا که از حاق بهاش مخالفت کردند، بعضی ها گفتن بریم برای جنگ بریم برای فلان از همه اینا اینجا بیعت گرفت که تخلف از گفتار من دیگه نکنی و هر چرا که من گفتم اطاعت کنی و از اینها بیعت گره که خلاصه تا مرگ یا در بعضی از روایات داره تا مرگ یا تا چی پای حفظ من بیستید و پای گفتار من بیستید و اینا بیعت کرد این زیری درختی بود اسمش بیعت شجره لقد رضی الله عن المؤمنین ازیبای از اون که تحت شجره خود رضی الله خدا راضی شد از مؤمنین وقتی که با تو بیعت کردن معلومشی کاری کرده بودن که خدا ناراضی بود و اون مخالفتشون با رسول الله بود خدا راضی شد بعد از این که بیعت کردن خدا از اینا راضی شد پس بنابراین از همین آیه در میاد که اول کارای بدی کرده بودن و خدا از این کار بعدشون سر نظر کرد و راضی شد اما حالا همه کاراشون خوبه و مرضیه خدا از این آیه که در نمیاد این یه مطلب مطلب دوم هم این مطلب است که در همین سوره که این آیه در سوره فتحه و همین در همین سوره آیه دیگری داره و آیه دیگر مبین این مطلب آیه اش اینه ارزمیشود ببین که ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايدهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه اجرا عظيما اُمّهایی که با تو بیعت کردند با خدا بیعت کردند بعضی از اینا نکس می یعنی نقض می کنند اهد و پیمانشون رو اینها ضررش به خودشون و عذابش به خودشون برمی اون کسی که وفا کند به اهد خودش اوست که خدا اجرش رو می ده افمانی که در بین این اصحاب دو دستند یه دل وفا کننده یه به اهد و پیمانند. یه عده شکننده عهد و فیمانند و خلاصه عرضبنده اون که از این آیه شریفه نشونیم استفاده کنیم تمام اصحاب رسول الله مردانی نیش و خوب بودن این دو تا آیه که هفته قبل عرض کردیم و مخواستیم به این جهت بکنیم از می شود به اینکه برای اینکه این آیه برای اینکه تمام مهاجران و انصار مریمون خوبی هستند از این آیه در این تمام این کلمه را بگم تمام شد از همین آیه معلوم است اصحاب کن نجوم به ایه مقصدیتم ارتدیتم دروغه و اگر در رو ملاحظه بفرمایید در لفظ صحبه همین روایت رو اشاره میکنه که بعضی از علمای عامه تصریح کردند که این روایت جعله اصحابی کن نجوم به ایه مقتدهیتم احتدهیتم خود علمای عامه تصریح کردند که این روایت جعله زیرا این خلاف قرآنه و من من حولکم منال اعراوه منافقون و میشود به اینکه که و قلوبهم نفی قلوب هم ما و عدن الله ورسوله الا غرورا با این آیاتی که تو قرآنه تو اصحاب و مثل ستاروان هستن هر کلام میتونن ما را هدایت کنن خودشون گمگورن ادهشون خجا می میتونن ما را هدایت کنن اما الان یادم افتاد در جنگ جمل این کلیمه را حالا افتاد دیگه میگم در جنگ جمل رمیر المومنین خب یه طرف جنگ بود تلهه و زوغیر از رشتفیده های اصفاب و تیغمبر بودن خیلی هم از اصحاب پر ارزش بود مخصوصا زوغیر آیشان که امور المومنین دیگه او دیگه پارش خیلی تام و تمامه آمده بودن جنگ کردن با علی روی قبل از اینکه جنگ شاید شروع بشه همین روی مومنین فرستاد زوگهی رو که بیا میخوام به توی چیزی بگم عرض میشود به که فرمود آمد زوگهی فرمود به اینکه یادته که یه روزی در فلون نقطه من امروز مراجعه نکردم الان یادم افتاد در فلون نقطه در فلان جا تو وارد شدی من خدمت رسول الله بودم تو وقتی مرا دیدی یه لبخندی به من زدی پیغمبر فرمودش زبید علی رو دوست داری گفتم بله چرا دوستش نداشته باشم مسلمان از با من اینمم چیه چیه چیه چیه چیه چرا دوستش نداشته باشم فرمود به همین نزدیکی میبینم که شما به روی هم شمشیر کشیدید و تو برباطلید و تو برباطلید قبل از این کلمه قبل از اینکه این, این, این سوال رو امیر از زبایی بکنه فرمود به این که چگونه با من جنگ میکنی که مثلا شاید رسول الله فرمود هر بچه هر با من چگونه این جنگ می بکنی؟ و حال اون که پیغمبر فرمود به تو و جنگ با تو جنگ با منه چگونه با من می جنگ بکنی؟ و کسی که با من جنگ کند اهل جهنم فرمود که اون رو بیر از کرد میرن چگونه من اهل جهنم باشم و حال اون که پیغمبر ده نفر را بشارت داده به بهش عشره مبشره سنی ها دارن ده نفر رو پیغمبر بشارت داده بهش فرمود اون ده نفر کیا هم شمود بنده که آلا بلد نیستم عمر و عبیبک و عثمان و تلهب و زبیر و شاید سعد وقاس و عبدالرحمن ابن اوف و این چندتا و نوتش و شمود آخریشون و نشمود. فرمود دهومیش کیه از کرد توی را مقنونی ده تویی فرمود که اقرار کردی که من از جمله اون ده نفری هستم که رسول الله بشارت داده به بهش ولی از جمله این ده نفری که تو شمردی من خودم از رسول الله شنیدم که بعضی از اینها در شاه از جهنم محبوسن هر وقت مالک دوزخ میخواد نار آتش جهنم را شدت بده در اون چهاره خورده ور میداره قسم به خدا شایده میرموانیم خودم از رسول خدا شیدم این ده نفری که توش مردی بعضی از اینا اینا که ثانی هستن میکنیم و بنابراین و اگه مقتدائیتون تو صلاحیت نداشتن برای هدایت چگونه صلاحیت داشته باشند که ما رو هدایت کنند. بنابراین خود این روایت البته مرموم آشقباسم همونطور که از کردم در صحبه ملاحظه فرمایید یه روایت از طرق شیعه نقل شده که از حاوی کن نجوم به ایه مقتده ایتوم اهده تو یا رسول الله من اصحابت قال اهل بیتی این زیر رو داره اون اصحابی که شما رو هدایت میکنه اهل بیت منه این روایت از طرق شیعه نقل شده ولی از طرق سنیا یا همین روایت بوده آخرش انداختن خلط ما پست بشه قضیه یا یه چیزی خود سنده رو بنابراین اون روایت هم مثل آية شریف دلالتی بر مطلب نداره و اجماع و از و لا تجتمع امتی علی خطا امت من بر خطا اجتماع نمیکنم اینو در هفته قبل اشاره کردم و از کردم امت رسول الله اجتماع نمیکنه این بر مذهب شیعه مطلب صحیح و درستیه. زیرا امت رسول الله اگر اجتماع بر مطلبی کردند تمام امت،, امت من اجتماع نمی‌کند یعنی تمام امت مجتمع شدن. اگر تمام امت بر مطلبی مجتمع شوند چون مذهب شیعی این است که در هر زمانی امامی معصوم موجود است اگر همه امت مجتمع شدند امام معصوم هم توعا ولی اون معناشی نیست که هر جمعی ده نفر پونزده نفر بیست نفر که جمع شدن خطا نمی کنن. نه ده نفر جمع شدن مثلا فرض کن عبی بکش رو نسب یا شیش نفر جمع شدن عثمان رو نفت کردن و امثال زالک خطا نمی نه اینا امت نیستن اینا بعض امت هن. اینا یه گوشه, ای از گوشه های خوچه که امت هن. امت رسول الله در سراسر زمین موجوده اینا هر وقت اجتماع با هم کردن و همهشون یه مطلبی رو گفتن این خطا نیست بنا بر عقیده شیعه در بین امت معصوم موجوده. و اگر همه امت اتفاق کردن در این صورت خطایی در بینی <تصفيق>